جلسه 45 قواعد فقه و سیاست اله حکومم 28 فروردین 1401 مؤسسه آموزشی امام رضا علیه السلام بسم الله بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهلبیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و ارواح العالمین له الفدا با توکل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهلبیت اطهار علیهم السلام بحثمون رو آغاز میکنیم بحثی که ما داشتیم در دا مورد قواعدی بود که زیر مجموعه قواعد اهم و مهم تلقی می و دسته نخست که قواعد مربوط به رفع تضاهم مربوط به تضاهم مسالح با مسالح بود یک قاعده فرعی که در اینجا ذکر شده عنوان قاعده تقدیم و مسلحت المتعدیم علل مسلحت القاسره دو تا مفهوم اینجا به کار رفته مسلحت متعدی و مسلحت قاسر مسلحت تعدی برای برانه تجاوزه مسلحت متعدی رو اگر بخوایم مفهوم شناسی کنیم به این معناست که در واقع یک, یک مسلحت از یک مورد به موارد دیگر تجاوز میکنه و در واقع یه حالت توسعه طلبانه و نوعی فراگیری در اون هست و به مسادیق دیگه میرسه مصلحت قاصر اینجا به چه معناست مصلحت قاصر اونیه که محدود این مسله در واقع حرکتی نمیکنه تعدی نمیکنه. محدود به موارد محدود مشخصه و از اونها به موارد دیگر سرایت نمیکنه. ببینید بعضی از موارد اینگونه است که مثلا جنبه علی معلولی داره. برخی از مواردی که در زمره اسباب یا علل محسوب میشند اونها قابلیت سرایان و تصری به دیگر موارد رو دارند و توسعه پیدا میکنند خب این تصری یا سرایت یه نوع در واقع فراگیری است این مسلحت نوعی در واقع فراگیری رو در زمن خود داره اینجا تقدیمه چون این مسلحتی مورد اشاره قرار گرفته مسلحتی که محدودند به یک مورد دو مورد مسلحتی که قابلیت تسریه دارند و می توانند سرایت بکنند و به مسادیق دیگه میرسه در این موارد تقدیم این مصلحت مسلحت حالا در واقع می تحلیلش کنیم تحلیل این قاعده چگونه است تقدیم مصلحت متعدی به بر مصلحت قاصر به این معناست که بعضی از موارد برخی از مسائل بگیم یا مصلحت نوع اول یک نوع فراگیری داره و بیش از در ظاهر به یک در ظاهر یا در بعد عمل به یک مورد تعلق گرفته اما در بازه زمانی شاهد این خواهیم بود که در واقع دو یا چند مورد دیگر برخوردار از اون مصلحت خواهند شد این به چه معناست به این معناست که در واقع یک مصلحت یک طرف به تعبیر دیگه در بد و امر صرفا در بد و امر که یکی از اونها یک مسلحت یکی از دو مورد در واقع تبدیل به چند مورد خواهد شد در بد و امر مسلحت نخست یک مورد است یک مسلحت رو در واقع حاویست و پوشش میده یک مورد یک مسلحت ایجاد میکنه اما اون مورد پس از خلاصه پس از تجاوز و تسریه و سرایان تصریب که پیدا شد به موارد دیگر دیگه یک مورد مسلحت نیست با موازنه دو مورد دو مورد یا چند مورد از مساله با یک مسلحت مواجه خواهیم بود به تعبید دیگه اینجا در این مورد ما مقایسه کمی داریم وجه ترجیح بعد کمی داره و یک مورد بر چند مورد توانه مقدم بشه خب این فرض این قاعده یک پیشفرض باید داشته باشه پیشفرض این قاعده این است که در سایر ابعاد مصالح مزبور با یکدیگر چه دارند تساوی دارند با یکدیگر برابرند و هیچ یک بر دیگری برتری نداره خب در نتیجه در واقع شکلگیری شکلگیری دو مس در واقع مسئلهات در دو مستاق بر مورد دیگر که صرفا در حد یک مورد باقی است، تقدم پیدا کنه شما یک جایی مثال عرفی بزنیم یک جایی رو آب میدید که زمین بایره اما یک جایی رو شما آب میدید آبیاری مناطق پر پربازده بر آبیاری مناطق بی بازده ترجیح داره خب این تطبیقاتیه حطیقات و مثال ها خب این نمونه ها می توان نمونه عرفی باشه. اولا شما در نظر بگیرید که هر دو طرف یک مسلحتی رو شاهد باشه، دو تا مسحت با هم مقایسه بشه. آبیاری یک منطقه پر و زمینه، کشاورزی در پر بازده بر آبیاری زمین های شور یا بی بازده ترجیح در یه نه حالا ممکن مناقشه در ثاق بکنید فیل جمله میخوره یه طرف یعنی امکان شگیر موارد دیگه هست. شما در بحث مسالله و منافع مربوط به دوتا کارخانه، تولیدات، اگر مثلا تولید دانش‌های کمبازده قابل مقایسه نیستند دانش‌های بگیم مثلا بنیادین بر تولید دانش‌های های کم تأثیر و کمبازده ترجیح دارند شما یه مسئله اینی رو دارید باید بیاید به صورت جدی بررسی کنید ببینید کدام ترجیح داره خب یک جایی شما یه شغلی درست می کنید تو ایجاد مشاقل سلسلوار که به صورت سلسلوار شغلهای بعدی رو راه می مشاغلی که زمین ساز مشاغل بعدی هستند. بعد مواردی که نه خنساس خون بر ایجاد مشاغل در غیر مؤثر و غیر تولیدی غیر مولد ترجیح دارند. خب این یه مثالیه. طبیعتاً پیش فرض های مهمی این قاعده داره یک اینی که این دوتا برابر بودن که عرض کردیم یکیشینی که هر دو باید مسلحت باشن که یکی مقایسه دو مسلحت یا دو منفعت در کارند مقایسه دوم اینکه این دو مسلحت در سایر ابعاد با هم برابر باید باشند یه مسئله دیگه هم این که فرض اصلی چیه اینی که دهرمندی از از این دو مصلحت به صورت تضاحمی در نظر گرفته شدند و الا اگر پیش فرض های ما این نباشه که شما اینها رو تضاهمی گرفته باشید که نمیشدن خارج از بحثه ما با مواردی کار داریم که اینها با هم تضاهم پیدا کرده باشند خب در مواحث سیاسی شما میاید ارتباط با کشورهایی که ارتباط با اونها امنیت یا ارزش افزوده به ارمغان میاره بر ارتباط با کشورهایی که امنیت یا ارزش افزوده تجاری برای شما به ارمغان نمیاره خب در این موارد شما یا باید یک امن... حال امنیت رو بذاریم کنار یک مقدار جنبه دفع مقصدم ممکنه داشته باشه اگه اون جنبه ایجابی رو نگاه کنید یا ارزش افزوده تجاری برای شما بیاره یا ارزش افزوده سیاسی یا اقتصادی بیاره خوبه شما موازنه مثبتی پیدا می‌کنید اینجا در توازن بین اینها ها موازنه بین اینها ها خب این ترجیح داره و سایر مصادیق خب این هم یک مورد پس نکته اساسی اینه که شما این رو چگونه تحلیل کنید این در بد و یک ویژگی داره در بد و یک مسلحته اما چون که علت میشه واقع میشه برای این موارد با یکی متفاوته بنابراین در واقع مقایسه مسائل با یکدیگر نشان میده که برخی از اونها میتوانند زایندگی و زایندگی تولید یا علیت برای سایر مصادیق مصلحت داشته باشند خب این موارد در واقع یک ویژگی ذاتی دارند ویژگی ذاتی هر مصلحت اقتضای خاص خود رو داره در این اساس که شما می توانید دست به مقایسه بزنید و می بینید که این موارد زایندگی دارند خب مسالهی که به این تعبیر، تقدیم مسات متعدی علل القاصره، قااصم،ور از چه جهت صور در این قاعده ناظر به عدمه، زایندگی و سببیت برای دیگر برای مسادیخ دیگری از مسلحت خواهد بود در مقابل تعدیه مسلحت ناظر به چیه؟ به زمین سازی و سببیت برای دیگر مصادیق مصلحت خواهد بود خب این یه حسن ذاتی داره اما مسئله مهم حال اینجاست ما الان این موارد تحلیل مفهومشناسیه شناسی این قاعده رو آشنا شدیم خب این مفهوم شناسی این تحلیل این اقتضا چه قدر به درد ما میخوره؟ آیا مستند میتونه باشه خب اگر بحث تضاهم باشه در اینجا ما نیاز به چی داریم اینکه واقعا تضاهمی باشه این رو در فرض پیشورس در پیش ها عرض کردیم خب شما اینجا باید با یه نگاه عقلایی نگاه کنید ببینید که اینجا چه مسئله شک گرفته دوستان صدا رو دارند نه دوستو. نه دوستو. نه دوستو. چون الان پیاموار برای نگاه کردم ببینم صدا مشکل نداشته باشه اینجا مستند این قاعده چه میتوانه باشه؟ اون تحلیلی که ما عرض کردیم به خاطر این بود که در واقع اون تحلیل لیمستند این قاعده امرو برگردان به مقایسه کمی پس وچه ترجیح باید وچه تر... ترجیح کمی باشه خب اینجا شما چگونه باید بررسی کنید؟ خب وجوه ترجیح به چی میتوانه باشه؟ وجوه فقهی ترجیح خب ترجیح مزبورت جنبه کمی داره از این رو ما باید ببینیم که در فقه به این مقوله چه گونه نگاه میکنن باید دید که آیا در همه موارد مباح رویکردهای فقهی و اقتضائات فقهی برای ترجیح کمی یه زمینه داره دیدگاه‌های فقهی مباحث فقهی در زمینه ترجیح کمی چیست خب شما در تضاهم در تضاهم حقوق مسئله اصلی چیه؟ اینه که باید حق هر فرد داده شود توان از حق هیچ کس چشبوشی کرد اما اگر امکان در واقع دادن و ایتای ایتای حقوق به زوال حقوق نباشه این مورد میتوانه قابل قبول باشه چرا چرا که زمین ساز دادن حقوق بیشتر به افراد خواهد بود به چه صورت تو مثالایی که عرض کردیم یک موقع حالا نمیخوام اون فضای فضای سیاسی حملاتی که به احمد نجات از طریق از اصلاح طلبها و گرایش های فضای آقای هاشمی و اینا قبول بکنیم اما مثالشون این بود میگفتن آقا شما دارید فقیر رو توسعه میدید فقر رو دارید یه چیزی میدید دست مردم به جاش تولید نمیکنید خب ما الان به جای این که مثلا این مواردی که گفته میشه شما قرض بدید به دیگران ترجیح این, شاید این مثالش به این میخوادیم این موقع از دینی هم شاید اون مقام استفاده میکرد مشابه بعضی ها شاید به این میخورد شما این موقع به کسی صدقه میدید یه موقع قرض میدید دادن قرض الحسنه به افراد میتوانه از یک نوعی زایندگی داشته باشه اما چرا؟ که یه نوع سرمایه گذاری زایندگی اقتصادی میتوانه داشته باشه اما بگیم حالا نمیگم همه جا قرصدگی به اون قرض و نحوه استفاده داره چونکه حداقل اینه که چرا که امکان دادن قرض به افراد دیگر بعد از وصول طلب و قرض وجود داره و این امکان شما روی زمه خلاصه می اندازه تو این مسیر که به دو نفر کمک بکنید و خلاصه نوعی استمرار خواهد داشت اما دادن صدقه میتوانه خلاصه این صدقه میتوانه تمام بشه و هزینه شود و امکان در واقع تکرار حمایت از دیگران در اون نیست با همون وجود از بین میره خب بنابراین اینجا شما یا مثلا صدقات جاریه صدقات جاریه که اوقافه یک نوع تکرارپذیری دیگه داره به منو خرج میشه اما یک نوع زایندگی ممکنه به چه خودش داشته باشه بنابراین عرض اصلی ما اینه که این وجه پذیرشش از چه جهته شما میخواید بگید مثلا بیاید از به صورت خام که ما الان نمیگیم کتاب سنت عقل اجماع. وقتی میخواییم این قاعده رو اثبات بکنیم باید در این استناد این در اثبات این قاعده باید بتوان ویژگی این قاعده رو در نصوص و مستندات شرعی سراغ گرفت یعنی لازم نیست که این این عبارت اونجا باشه اگر ما عبارتی پیدا کنیم اما مهم اینه که خیلی از موارد که ممکنه مستند سریح نداشته شما استدلال فقهی بکنید از طریق استدلال های فقهی باید این ویژگی رو پیدا کرد در واقع به تغییر دیگه با موضوع شناسی ناظر به این قاعده میتوان زمینه تطبیق نصوص دینی رو در اون سراغ ایجاد کرد خب شما اگر بخواید برید روی سنت برید رو بنای اقلا این زمینه درش وجود داره بنای اقلا میتوانه از چونین قاعدهی به شرطی که محضوری ایجاد نکنه نکنه حمایت کنه در واقع تمایت بکنه و چونین ای رو حمایت بکنه و ایجاد بکنه اثبات کنه خب اما اگر ما بخوایم یک دلیل عقلی بیاریم باید یک نکته رو لحاظ بکنیم چقدر این قاعده میتونه قابل قبول باشه این قاعده متضمن ترجیح لزومی یک طرف بر طرف دیگره خب، این پیش‌فرض مهمیه خب وقتی که در این میگیم باید ما این رو به توانی اثبات کنیم آیا در موارد غیر لزومیه یا و ترجیح صرف بهتر نیست به تعبیر دیگه این قاعده صرفن بیانگر بیانگر استحبابی نیست چرا که شما اینجا گیر کردید و در این مورد باید شما چیکار کنید؟ ببینید قابل اثبات هست یا نیست خب اینجا این پیشفرز به شما میگه که من فقط استحباب رو بیان نمی کنم خب ترجیح مزبور ترجیح کمی به نحوه لزومی هم هست شما این ترجیح رو عقل میتوانه قبول بکنه اما بیش از این چی بستگیر موارد داره عقل یا حتی سیره اقلان نمیتوانند به صورت مطلق ترجیح یک مورد قابل تعدی یک مسلحت قابل سرایان و تعمیم رو و در واقع بگیم قابل تعبیری رو در موارد دیگر خالص بپذیره مگر آنکه لزومی لزوم و ضرورتی در کار باشه لذا از چه از چه ما رفتیم سر تضاحم حقوق این مورد رو ما میتوانیم در حقوق پیدا کنیم باید حق مذبور رو ما تحلیل کنیم در تضاهم حقوق ضروری حقوق میتوان مصادیقی برای اون پیدا کرد چرا؟ در چ... چون که در اونجا هر حقی باید داده بشه خب لذا اونجا و اگر ما یک موردی پیدا کنیم و برخی از موارد تضاهم طقوق می توانند زمین سازم ترجیح یک طرف بر طرف دیگر باشه چون که از حقوق هیچ کس نمیشه دست برداشت اما اگر امکان نداشته باشه امکان استیفای همه حقوق نباشه دیگه ما چیکار کار میخواییم بکنیم اگر امکان استیفای همه حقوق همه استیفای حقوق همه افراد امکان نداشته باشه خب به ناچار باید به برخی از اونها حقوقشون پرداخت به استیفای حقوق برخی از اونها پرداخت که امکان اون وجود داره اما اگر بتوان حقوق افراد بیشتری رو به صورت با واسطه استیفا کرد خب این در واقع مقتضی با اصل به کار سازگاری داره ای این امر مقتضی در واقع مقتضی ضرورت تقدیم یک طرف بر طرف دیگه است در این صورت می توانیم ترجیح بدیم به این صورت اگر چاره ای اگر در واقع چاره ای جز استیفا نباشه یک طرف تعداد رو داره بیشتر میکنه اگر تقدیم یک طرف میتوانه به استیفای حقوق بیشتری از زوال حقوق به پردازه خلاصه کمک بکنه چاره ای جز تقدیم اون نیست و در نتیجه این مورد میتوانه قابل قبول باشه خب. زمین ساز دادن حقوق بیشتر و افراد خواهد بود خب اون حقوق اونها هم چیه؟ حقوق در واقع زمینه ساز استیفای حقوق افراد بیشتری هست حالا یه مورد دیگه هم در جا میشه بگیم اگر حقوق یک نفر اگر همه حقوق یک نفر قابل استیفا نباشه و در این حال استیفای برخی از حقوق اون فرد در واقع از مصادیق حقوق از مصادیق بگیم مساله متعدی باشه این مورد هم میتوانه در واقع میتوانه به تکثیر و استیفای حقوق بیشتری از اون فرد بیانجامه ولو به صورت می به صورت غیر مستقیم اون ویژگی رو داره یک حق رو براش احیاب کنید. ده تا حق براش میتوان احیا بشه. خب اینم هست بنابراین در مجموع باید باید در اثبات این قاعده این ویژگیهاش رو در نظر گرفت چنان که ویژگی سرایت کنندگی و تعدیه در یک طرف میتوانه به استیفای حقوق بیشتر بینجامه خب بنابرای به تحبیر دیگه ما اینجا با موضوع شناسی ناظر به این قاعده این رو در واقع توانستیم تحلیل کنیم تطبیق خصسوس دینی رو در آن می توانیم ایجاد بکنیم و همونطور که در واقع سایر مستندات هم مستندات اثبات این قاعده مانند ادله خصسوس دینی یا ادله لبی رو ما اینجا درش ایجاد می چنان که اگه بخواییم دنای اوقلا رو ما اینجا به کار ببریم باید همین رو در نظر بگیریم خب در مجموع ما از این ویژگی گفتیم باید استفاده بکنیم خب این هم یه قاعده حالا تفحص در مصادیق این هم می توانه کمک بکنه در واقع استقراع مصادیق مختلف چون این کمک مناسبی می توانه خلاصه به مقوله بکنه این مسادیق فقط محدود به حقوق همه نیست تکالیف و سایر این مورد میتوانه بکنه به اثبات یا تنقیح یا در واقع بگیم محدود سازی حتی این قاعده بکنه خب شما در غیر حقوق هم می توانید چون بحثی رو دنبال بکنید و ببینید که آیا امکان پیگیری این مقوله وجود داره یا نه شما سایر مسائل رو می بینید حقی نیست از مسادق سیاسی که عرض کردیم این یک مسئله مهمیه درست بعضی از اونها امکان نداره یه نکته دیگه هم این که شاید به نوعی شروع تو این بحث رو پررنگ بکنه این که به اهداف که جزا مثل در واقع مثلحت آفرینه توجه بکنیم این سرایت کنندگی رو در کدام موارد قابل سراغیری هست شما در این حال نباید کوتاه بیاید از این که وجوه مربوط به این قاعده سایر قواعد رو به صورت تطبیقی ملاحظه بفرمایید پس قاعده تقدیم مصلحت چی رو می گفت این قاعده متضمن ترجیح مواردی است که در اونها مثلحت، یک مصلحت به صورت بدوی محدود است اما به صورت زمانی زمانی یا غیر زمانی می توان خلاص شاهد شکلگیری و توسعه و فرار شکلگیری و در واقع بگیم توسعه یا فراگیری مصلحت نسبت به مصادیق دیگر شد در این صورت در این صورت این مورد میتواند بر مصالحی که قصور از تصری تسری دارند مقدم شوند و ترجیح داده بشن خب این یه مقوله است اگر ما یک مسالهی داریم مثلا شما به یک پدری کمک می کنید به یک فرد توانمندی کمک می کنید این فرد توانمند کمک بدن میکنه. شما مثلا یک کشوری رو در نظر می گیرید مساعدت به کشورهای کشورهای مقاومت جبهه مقاومت میتونه مقاومت اسلامی میتونه قابل توسعه و تکرارشوندگی توسعه توسعه باشه و تکرارشوندگی داره و در واقع قابل توسعه باشه به این معنا که و به توسعه چی بگیم می توان قابل توسعه در دیگر کشورهای منفعل یا خونساب باشه چرا به این معنا که به این معنا که اونها تبدیل به اون کشورها در واقع کشورهای مقاوم... جبهه مقاومت تقویت میشن تقویت کشورهای جبهه مقاومت میتوانه الگوس... الگویی برای دیگر کشورهای اسلامی برای در واقع پذیرش الگوی مقاومت ایجاد کنه اما در صورتی که کشورهایی که ناتوانند از روحیه مقاومت که کدام کشورهایی میگیم؟ کشورهای اسلامی که از روحیه مقاومت برخوردار نیستند یا به کشورهای خلاصه متأثر از استعمار خلاصه از این روحیه برخوردارن به کشور از جورگه کشورهای منفعل هستند در برابر کشورهای استعمارگر استعمارگر غربی اینجا شما الان ببین میخواهید کمک کنید خب این سرایت کنندگی نداره اینجا دیگه این مفعله رو شما این رو باید خلاصه کنار بذارید نمیتوانند خلاصه با برخورداری از حمایت اسلامی حال وارد جرگه در واقع وارد جرگه مقاومت اسلامی شود. در این صورت شما ترجیح داره حمایت از امسال حماس و این اینارروها یا کشور های اسلامی از کشور های مربوط به مقاومت اسلامی بر، سایر موارد ترجیح داره خب چرا؟ چون که توصیه پیدا میکنه حالا یه جایی هم ما موارده که داریم الان اون مورد آیات شریفه که میگه شما تعلیف قلوب بکنید تعلیف قلوب نسبت به شخصیت ها جریان ها کشور ها و نهزت ها کشورهایی که میتوان خلاصه اونها رو به خود جذب کرد نسبت به دیگر موارد ترجیح داره امکانات شما محدوده با وجود مح... با محدود در صورت در واقع محدودیت امکانات نمیتوان از همه خلاصه حمایت کرد با همه خلاصه از در مسالهه وارد شد بلکه در این موارد اصلا ممکنه حتی این مورد رو یه موقع بگیم که از تزاهم خارجه به همه میتوان مساعدت کرد اما تألیف قلوب نسبت به شخصیت‌ها جریان‌های جریان که میتوان اونها رو به خود جذب کرد و در واقع بگیم میتوان از ترید جذب اونها افراد بیشتری رو به حمایت از نظام اسلامی وادار کرد یا راضی کرد و خلاصه اونها رو نزدیک کرد ترجیح داره یه جایی حمایت ضعیفه یک جایی حمایت قویه ما در اون فرض حمایت برابر در این صورتی که از هم نمی توانیم حمایت بکنیم محدودیت در واقع بنیه مالی مختزیه در واقع ترجیح برخی از این موارد بر موارد دیگر خواهد بود مثل در واقع حمایت از تمام کسانی که میتوان اونها رو خلاصه تعلیف قلوب کرد میتوان به تعلیف قلوب اونها پرداخت این حسن داره برخورداره از حسن است اما در تضاهم میان اونها باید مواردی که در واقع تعلیف قلوب اونها زمین ساز تقویت بیشتره کشورهای اسل... کشور اسلامی و نظام اسلامیست پرداخت باید مواردی رو ترجیح داد که تعلیف قلوبون ها بیشتر زمین ساز تقویت نظام اسلامیست و می توانه افراد بیشتری رو هم افراد یا امکانات بیشتری رو در اختیار نظام اسلامی قرار بده یا اون که خلاصه دفع مفسدش بیشتر باشه خب شبیه این بحث رو دیگه در جای دیگه باید داشته باشیم اینجا بحث در واقع ترجیح مساله خب اگر یه چار پنج دقیقه سراد هم دارم